اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر تاها ما انزلا القرآن لتشقا ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به زحمت افتی اِلَّا لمن آن را فقط برای یادآوری کسانی که از خدا میترسند نازل ساختیم تنزیلا من خلق الارض این قرآن از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمان های بلند را آفریده همان بخشنده ای که بر عرش مسلط است. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه در زیر خاک پنهان است و این تجهر بالقول فانده اندهو یعلم السر و اخفا. اگر سخن آشکارا بگویی یا مخفی کنی او اسرار و حتی پنهان تر از آن را نیز میداند الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى او است که معبودی جز او نیست و نامهای نیکوتر آن اوست و هل اتاک حدیث موسی و آیا خبر موسی به تو رسیده است اذ رآ نارا فقال لی اهلهم کثو آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علن النار هده هنگامی که از دور آتشی مشاهده کرد و به خانواده خود گفت اندکی درنگ کنید که من آتشی دیدم شاید شعله از آن برای شما بیاورم یا به وسیله این آتش راه را پیدا کنم فلما موسا هنگامی که نفت آتش آمد ندا داده شد که ای موسا «انی انا ربک فخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى» من پرورگار تو کفشهایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس تواق هستی ونا خدارون تو ك فستماوح و من تو را برای مقام رسالت برگزیدم اکنون به آنچه بر تو وحی شود گوش فراده اینني انا الله لا إها إلا انا فاعبدنی وقيم سوالتلیین کری من؟ الله هستم معبودی جز من نیست مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار این ساعت آتیت اکاد اخفیها لی تجزا لی تجزا نفس بما ما تسعا. به طور قطع رستاخیز خواهد آمد میخواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع اتبع هواه فتغدا. پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از حوث خویش خیش پیروی می کند تو را از آن باز دارد که هلاک خواهی شد و ما تلک بیمینی یا موسی و آن چیست در دست راست تو ای موسی او علیها عصا و بها علی غنم و فیها گفت این عصای من است بر آن تکیه میکنم برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو میریزم و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است قال ألقها یا موسى گفت ای موسا آن را بیفكن فألقاها فإذا هی حیة تسعی پس موسا آن عصا را افكند كه ناگهان اژدههایی شد كه به هر سو میشتافت قال خذها ولا تخاف سنعیدها سیرتها الأولی فت آن را بگیر و نترس ما آن را به صورت اولش باز می‌گردانیم و که يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ان ايه و دستت را به گریبانت ببر تا سفید و بي بی بیرون آید این نشانه‌ی دیگری از سوی خداوند است. لِنوریا کمن آیاتنا الکبر. تا از نشانه‌های بزرگ خیش به تو نشان دهیم. اذهب الی فرعون ان له طغوا. اینک به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است. قال ربی اشرح لی موسا موسی گفت پروردگارم سینه ام را گوشاده کن و یسر لی امری و کارم را برایم آسان گردان و احلل عقدت من لسانی و گره از زبانم بگشای یفقه قولی تا سخنان مرا بفهمند و لی وزیرا من اهلی و وزیری از خاندانم برای من قرار ده هارون اخی برادرم هارون را خوشدلبی ازری با او پشتم را محکم کن و اشرکه فی امری و او را در کارم شریک ساز گین وسبحک کثیرا تا تو را بسیار تسبیح گوییم و نذکرک کثیرا و تو را بسیار یاد کنیم این بنا چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده ای موسی فرمود ای موسا آن چرا خواستی به تو داده شد؟ و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت خود ساختیم از اوحینا آن زمان که به مادرت آن چه لازم بود الهام کردیم اني قذفي فيه في التابوت فقذفي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اورا در صندوقي بيكن و آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا آن را به ساحل افکند و دشمن من و دشمن او آن را برگیرد و من محبتی از خودم بر تو افکندم تا در برابر دیدگان من ساخته شوی و پرورش یابی اذ تمشی اختك فتقول هل دلم عل من فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْتَ قَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِي يَا مُوسَى هنگام که در نزدیکی کاخ فرعون راه می رفت و می گفت آیا کسی را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت می کند و دایه خوبی برای او خواهد بود؟ پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به تو روشن شود و غمگین نگردد و تو یکی از فرعونیان را کشتی اما ما تو را از اندوه نجات دادیم و بارها تو را آزمودیم پس از آن سالیانی در میان مردم مدین توقف نمودی سپس در زمان مقدر برای فرمان رسالت به اینجا آمدی ای موسا و من تو را برای خودم ساختم و پرورش دادم اذهب انت و لا تو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من کوتاهی نکنید. اذهب إلى فرعون به سوی فرعون بروید که تقیان کرده. فقولا له قولا لَّيِّنًا لعله يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى اما به نرمی با او سخن بگویید شاید متذکر شود یا از خدا بترسد قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى موسا و هارون گفتند پروردگارا از این می ترسیم که بر ما پیشی گیرد و قبل از بیان حق ما را آزار دهد یا تقیان کند و نپذیرد فرمود نترسید من با شما هستم همه چیز را می شنبن و می بینم فقولا انا رسول ربك فارسل معنا فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى به سراغ او بروید و بگویید ما فرستادگان پروردگار تو ایم بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنان را شکنجه و آزار مکن ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم و درود بر آن باد که از هدایت پیروی میکند ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب ما شماه شده که عذاب بر کسی است که آیات الهی را تکذیب کند و سرپیچی نماید قال فمن ربكما يا موسى فرعون گفت پروردگار شما کیست ای موسی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه گفت پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده سپس هدایت کرده است قال فما بال القرون الاولى پس تکریف نسلهای گذشته که به اینها ایمان نداشتند چه خواهد شد؟ قال علمها عند ربی فی كتاب لا یضل ربی ولا ينسى گفته آگاهی مربوط به آنها نزد پروردگارم در کتابی ثبت است پروردگارم هرگز گمراه نمی شود و فراموش نمی و آنچه چه شایسته آنهاست به ایشان میدهد. الذی الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخُرَجِنَا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد و راهایی در آن ایجاد کرد و از آسمان آبی فرستاد که با آن انواع گوناگون گیاهان را از خاک تیره برآوردین لآیات هم خودتان بخورید و هم چهار پایانتان را در آن ب چرا برید. مسلما در اینها نشانه های روشنی برای خیرتمندان است. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ما شما را از آن زمین آفریدیم و در آن باز میگردانیم و بار دیگر در قیامت شما را از آن بیرون میآوریم و لقد اوریناه آیاتنا كلها فكذب وابا ما همه آیات خود را به او نشان دادیم اما او تکذیب کرد و سر بازد زد قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى گفت: ای موسی آیا آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى قطعاً ما هم سحری همانند آن برای تو خواهی ما برد همکنون تاریخش را تعیین کن و موعدی میان ما و خودت قرارده که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنیم آن هم در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد و ان گفته میاد ما و شما روز زینت روز عید است به شرط اینکه همه مردم هنگامی که روز بالا می آید جمع شوند فتد فرعون فجمع كيده ثم فرعون آن مجلس را ترک گفت و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد و سپس آمد قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا موسا به آنان گفت وای بر شما دروغ بر خدا نبندید که شما را با عذابی نابود می و هر کس که بر خدا دروغ ببندد نومید و شکست خورده می شود امرهم بينهم و آنها در میان خود در مورد ادامه راهشان به نزاع برخواستند و مخفیانه و در گوشی با هم سخن گفتند قالوا ان هذان لا ساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى گفتند این دو نفر مسلما ساحران میخواهند با سهرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از بین ببرند فاجمعوا كيدكم ثم دأتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى اجلون که چنین است تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید و در یک صف به میدان مبارزه بیایید امروز رستگاری از آن کس است که برتری خود را اثبات کند قالوا يا موسى انما ان تلقي واننا وانما نكون اول من القى صاحران گفتند ای موسی آیا تو اول عصای خود را می افکنی یا ما کسانی باشیم که اول بیفکنیم قال بل أَلْقُمْ فَإِذَا حبالهم وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ من سحرهم أَنَّهَا تَسْعَبُ گفته شما اول بیفت کنید در این هنگام تنابها و عصاهای آنان بر اثر سهرشان چنان به نظر میرسید که حرکت میکند فَأَوْ جَسَ نفسه نَفْسِهِ موسى موسا ترس خفیفی در دل احساس کرد مبادا مردم گمراه شوند قل لا تخف انك انت الأعلى. گفتیم نترس تو مسلما پیروز و برتری و الق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَدَى و آنچه را در دست راستداری بیفکند تمام آنچه را می‌بندد. میبلعد آنچه ساخته تنها مکر ساهر است و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سجدا قالوا قالوا آمنا بربها هارون وموسى موسی عصای خود را افکند و آنچه را که آنها ساخته بودند بلید ساهران همگی به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم قال آمتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنْ لَأَيُّنَا أَشَدُ عذابا وَأَبْقَا فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما ازنده هم به او ایمان آوردید؟ مسلما او بزرگ شماست که به شما سهر آموخته است به یقین دستها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می و شما را از های نخل بدار می آویزم و خواهید دانست مجازات کدامی یک از ما درناکتر و پایدارتر است قالو لن على ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فقض اینما تقضی حیات گفتند سوگند به آن کسی که ما را آفریده هرگز تو را بر دلایل روشنی که برای ما آمده مقدم نخواهیم داشت هر حکمی میخواهی بکن تو تنها در این زندگی دنیا میتوانی حکم کنی ان نا امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ما بپروردگارمان ایمان آوردین تا گناهانمان آنچه را از سهر بر ما تحمیل کردی ببخشاغت و خدا بهتر و پایدارتر است اینه من ربه مجرم مجرما له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى هر در محضر پروردگارش خطا حاضر شد آتش دوزخ برای اوست در آنجا می میرد و نه زندگی کند و من یاته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك فاولائك لهم الدرجات العلا. و هر کس با ایمان نزد او آید و اعمال صالح انجام داده باشد چون این کسانی درجات عالی دارند جنات عدن تجری من تحتی الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکى باغهای جاویدان بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است در حالی که همیشه در آن خواهند بود این است پاداش کسی که خود را پاک نماید ولقد لقد اوحینا الى أن ان اسر بی لهم فضل بلهن طریقا فی البحر یبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا ما به موسا وحی فرستادیم که شبانه بندگانم را از مصر با خود ببر و برای آنها راهی خوشک در دریا بگوشا که نه از تعقیب فرعونیان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیمی ما غشیهم به این ترتیب فرعون بالشگریانش آنها را دنبال کردند و دریا آنان را در میان امواج خروشان خود به طور کامل پوشانید و فرعون, و فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایت نکرد يا بنی اسرائيل قد أنجیناكم من عدوكم وواعدناكم و جانب الطور و ونزلنا علیكم المند والسلوى ای بنی اسرائیل ما شما را از چنگال دشمنتان نجات دادیم و در طرف راست کوه تور با شما وقت گذاردیم و من و صبا بر شما نازل کردیم ک می اونیبتیم رازن خو نک و تققا و عليه بخورید از روزی های که به شما دادهم و در آن توقیان نکنید که غضب من بر شما وارد شود و هر کس غضبم بر او وارد شود سقوط کند. و اننی لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا, صالحا ثم اهتدى و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرسم. و ما اعجلك عن ای موسی hey چه چیز سبب شد که از قومت پیشی گیری و برای آمدن به کوه تور عجله کنیم قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَا ارز کرد پربردگارا آنان در پی منند و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خوشنود شوی قال فَإِنَّا قد فَتَنَّا قومك من بعدك وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فرمود ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت فرجع موسی الى قومی غضبان اسفا قال يا قوم ألم یعدكم ربكم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم این یحل علیکم غضب من ربکم فأخلفتم موعدی موسا خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت ای قوم من مگر پروردگارتان وعده نیکویی به شما نداد آیا مدت جدایی من از شما به طول انجامید یا میخواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل شود که با وقتی من مخالفت کردید قالو ما اخلفنا موعدک بی ملکنا ولكن نحم من لا اوذرا من زينه القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري گفتند ما به میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم بلکه مقداری از زیورهای قوم را که با خود داشتیم اپکردیم و سامری این چنین الغا کرد فاخرج لهم عجلا جسدا له هوار فقالوا فقالوها ذا الهكم والاه موسى و برای آنان مجسمه گوسالی که صدایی همچون صدای, هم صدای گوساله واقعی داشت پدید آورد و به یک دیگر گفتند این خدای شما و خدای موساست و او فراموش کرد پیمانی را که با خدا بسته بود آیا نمی بینند که این گوساله هیچ پاسخی به آنان نمی دهند و مالک هیچ گونه سود و زیانی برای آنها نیست؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي و پیش از آن هارون به آنها گفته بود ای قوم من شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفت اید پروردگار شما خداوند رحمان است پس از من پیروی کنید و فرمانم را اطاعت نمایید قالوا لن موسی ولی آنها گفتند ما همچنان گرد آن می‌گردیم و به پرستش گوساله ادامه می دهیم تا موسی به سوی ما بازگردن قال يا هارون ما منعك اذ موسا گفت ای حارون چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند؟ از من پیروی نکردی؟ آیا فرمان مرا اصیان نمودی؟ قال يا بني ان لا تأخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ولم ترق هارون گفت ای فرزند مادرم ریش و سر مرا مگیر من ترسیدم بگوئی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی موسی رو به سامری کرد و گفت تو چرا این کار را کردی ای سامری؟ قال بصوت بما لم یبصرو به فقبضت قبضت من اثر رسول فنبدوها فنبذتها و سولت لی نفسی گفت من چیزی دیدم که آنها ندیدند من قسمتی از آثار رسول را گرفتم سپس آن را افکندم و این چونین هوای نفس من این کار را در نظرم جلوه داد. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا موسا گفت برو که بهره تو در زندگی دنیا این است که هر کس با تو نزدیک شود بگویی با من تماس نگیر و تو میادی از عذاب خدا داری که هرگز تخلف نخواهد شد اکنون بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی و ببین ما آن را نخست می سوزانیم سپس ذرات آن را به دریا الله نممالذی لا اله الا هو وسع كل شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نیست و علم او همه چیز را فرا گرفته است كذلك نقص علیك من أنباء ما قد سبق وقد آتیناك من لدنا ذكرا اینگونه بخشی از اخبار پیشین را برای تو بازگو میکنیم و ما از نزد خود ذکر و قرآانی به تو دادیم من اعرض عنه فا انهو یحمل یوم القیامت وزرا هر کس از آن روی گردان شود روز قیامت بار سنگینی از گناه و مسئولیت بردوش خواهد داشت خالدین فیه وساء لهم یوم القیامت حملا در حالی که جاف در آن خواهند ماند و بد باریست برای آنها در روز قیامت الصور و زرقا. همان روزی که در سور دمیده می شود و مجرمان را با بدنهای کبود در آن روز جمع می کنیم إلا إلا آنها آهسته با هم گفتگو میکنند بعضی میگویند شما فقط ده شبان روز در عالم برزخ توقف کردید نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا ایلا بستم ایلا یوما ما به آنچه آنها میگویند آگاه تریم هنگامی که نیکو روشترین آنها میگوید شما تنها یک روز درنگ کردید ویسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا بحث تو در باره کوه ها سوال میکنند بگو پروردگارم آنها را متلاشی کرده برباد میدهند فیدرها قرعا صفصفا صفصف زمین را صاف و هموار و بیا و گیاه رها میسازند لا ترى فيها عوجا ولا امتا که در آن هیچ پستی و بلندی یوم يومئذ يتبعون الداعی لا وجله و خشعت الاسوات فلا تسمع الا همسا در آن روز همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت و همگی از قبرها برمیخیزند و همهی صداها در برابر عظمت خداوند رحمان خازه میشود و جز صدای آهسته چیزی نمی‌شنوی. یومئذ لا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. در آن روز شفاعت هیچ کس سودی نمی‌بخشد جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده. و به گفتار او رازی است یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم لا یحیطون بهی علما آنچرا پیش رو دارند و آنچه را در دنیا پشت سر گذاشته اند میداند. ولی آنها به علم او احاطه ندارند وعانت الوجوه للحَي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. و در آن روز همه چهره ها در برابر خداوند حی قیوم خاضع می شود و مایوس و زیان کار است آنکه بار ستمی بر دوش دارد و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما اما آن کس که کارهای شایست انجام دهد در حالی که مؤمن باشد نه از ظلمی میترسد و نه از نقصان حقش وكذلك انزل الله قرانا عربيا و مِنَ و صرفنا فيه من الوعید لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا و ان ان را قراني عربی نازل کردیم و انواع وعیدها و انذارها را در آن باز مودیم شاید تقوا پیش کنند یا برای آنان تذکری پدید آورد. فتعلم الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقم رب علما پس بلند مرتبه است خداوندی که سلطان حق است پس نسبت به تلاوت قرآن عجله مکن پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود و بگو پروردگارا علم مرا افزون کن پیش از این از آدم پیمان گرفته بودیم اما او فراموش کرد و عظم استواری برای او نیافتیم و اید قلنا للملائکت سجدو لی فسجدوا الا ابلیس ابا و آور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید همه هی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و سجده نكرد فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنكما من الجنت فتشقا پس گفتیم ای آدم این ابلیس دشمن تو و دشمن همسر توست مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج خواهی افتاد این لك تجوع ولا تعرا. اما تو در بهشت راحت هستی و مزیتش برای تو این است که در آن گرسنه و برهن نخواهی شد و لا تضمع ولا و در آن تشن نمیشوی و حرارت آفتاب آزارت نمیدهد. فوسع وسع ایله الشیطان قال یا آدم هل ادُلُك قال یا آدم هل على شجرة الخلد وملک لا يبلا. ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: ای آدم آیا میخواهی تو را به درخت زندگی جاوید و ملکی بی راهنمایی کنم؟ فاكلا منها فبدت لهما ما سواتا و طفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى آدم ربه فغوى سرانجام هر دو از آن خوردند، و لباس بهشتیشان فرو و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود از برگهای درختان بهشتی جامه دوختند. آری آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و از پاداش او محروم شد. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سپس پروردگارش او را برگزید و توبش را پذيرفت و هدایتش نمود قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا خداوند فرمود هر دو از آن بهشت فرود آیید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود ولی هرگاه هدایت من به سراغ شما آید هر کس از هدایت من پیروی کند نه گمراه می و نه در رنج خواهد بود و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا و يوم القیامت اعمى و هر کس از یاد من رویگردان شود زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنین قال اعما و قد كنت بصيرا می گوید پروردگارا چرا نابینا محشورم کردی؟ من که بینا بودم قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْ كَآيَاتُنَا كا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَهَ می آنگونه که آیات ما برای تو آمد و تو آنها را فراموش کردی امروز نیز تو فراموش خواهی شد وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربي ولعذاب الاخرة الآخرة وابقا و این گونه جزا میدهیم کسی را که اسراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد و عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولينها آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسلهای پیشین را که تقیان و فساد کردند هلاك نمودیم و اینها در مسکن‌های ویران شدهٔ آنان راه میروند مسلما در این امر نشانه‌های روشنی برای خردمندان است ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما, لزاما واجل مسمی و اگر سنت و تقدیر پروردگارت و ملاحظه زمان مقرر نبود عذاب الهی به زودی دامان آنان را می گرفت فاصبر ما يقولون و بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا در برابر آنچه میگویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن تسبیح و حمد پروردگارت را به آور و همچنین برخی از ساعات شب و اطراف روز پروردگارت را تسبیح گوی باشد که از التاف الهی خوشنود شوید. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة, الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقا وهرگز چشمان خود را به نعمتهای مادی که به گروههایی از آنان داد این میافتند اینها های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است و امر اهلك بالصلاه واستمر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى خانواده خود را به نماز فرمانده و بر انجام آن شکی با از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای تقواست. و قالوا لولا یأتینا بی آیت من ربه اولم تأتیم بیند ما فی الصحف الاولا گفتند چرا پیامبر معجزه و نشانه از سوی پروردگارش برای ما نمی آورد بگو آیا خبرهای روشنی که در کتابهای آسمانی نخستین بوده برای آنها نیامد؟ ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلی لقالوه لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ان الذين اگر ما آنان را پیش از آنکه قران نازل شود با عذابی حلاک میکردیم در قیامت میگفتند پروردگار را چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم قلل فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن همه در انتظاریم ما در انتظار وقای پیروزی و شما در انتظار شکست ما حال که چنین است انتظار بکشید اما به زودی میدانید چه کسی از اصحاب صراط مستقیم و چه کسی هدایت یافته است.